بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر الله تعالی فرجه و شریف در برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم با مباحثی پیرامون مهدویت حضرت حجت از الله تعالی فرجه و شریف این برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاجهای حجازی هستیم ازشون خواهش میکنم سلام خدمت شما داشته باشند در ادامه‌ی برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و کارشناس و برنامه خواهم بود حاضر آسلام علیکم و رحمت الله علیکم خیلی خوش آمدید بفرمات سلام آمد باشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله الَّذِي جَعَلَ كَمَالَ دِينِهِ وَ تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوَلَایتِ مَ علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله ارزه سلام مجدد خدمت شما شنبهاندا سلام اندبان عزیز و خسته نباشید خدمت بزرگوارانی که در حال زحمت هستند برای ارائه ارائه این برنامه ها و ان که گفتگوی خوبی داشته باشی و مرضی رضای امام عصر علیه السلام, السلام باشد دوستان در جریان هستید چند هفتهی که در خدمت استاد بکارشنس محترم حضورهای هجازی هستیم مبحثی رو که ارائه میکنند وظائف شیعان در اثر غیبت هست چند مورد رو فرمودن شش مورد رو تا الان توی جلسات گذشته اشاره داشتند با ادامه این تقسیم بندی و ارائه بحثی که جنبای هجازی مطرح میکنند در مورد موضوع وظایف شیعه ایان در عصر غیبت این برنامه برنامه رو آغاز میکنیم در ادامه برنامه متناسب با مباحث بنده سوالاتم رو خدمت ایشون مطرح خواهم کرد تا جواب بفرمایید بله ما دو جلسه درباره وظایف شیعه در عصر غیبت صحبت کردیم و عرض کردیم که در روایات اهل بید جدای از این که های دوران غیبت حضرت و علائم دوران غیبت حضرت بیان شده است که شیعه در افتنا... افتتان های میفتد و در امتحانات میفتد و آنچه که مربوط به دوران قبل از ظهور حضرت است همچنین همجنی علائم ظهور رو بیان کردند شیعه رو رها نکردند و فرمودند برای اینکه در این فتنه ها و بلاها و امتحانات دوران غیبت شما موفق باشید و دچار انحراف و گمراهی و زلالت نشوید وظایفی رو برای ما مشخص کردند و واقعش اینه که عمل به این وظایف خیلی هم راحته یعنی آنچنان نیستش که سخت باشه و اتفاقا ما به مجموع این وظایف و که به عنوان عوامه ریز که اهل برای ما بیان کرده وقتی به مجموعش نگاه میکنیم ببینیم اتفاقا کارها و است که سختی ها رو اتفاقا از دوش ما بر میداره یعنی چنین نیستش که بخواد سختی رو رو دوش ما بنوزد و گفتن شما خودتون هستید که ممکنه است برای خودتون ایجاد سختی و مشکل بکنید. اگر نه امر ما اهل بیت علیه السلام واضح و آشکار است. خب ما چند محور رو از متن روایات اهل بیت عرض کردیم که هر کدوم از اینها رو گفتیم مجموعه از روایت برایش هست نه یک روایت و دو روایت. شاید بیش از ده ها روایت برای هر کدوم از این عناوین هست. عنوان اول این بود که گفتیم فرمودن تمسک رو به امر اول به اون عقیده ابتدایی که دارید تمسک کنید عقیدت رو عوض نکنید عنوان دوم فرمودن احبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض اونایی که دوست داشتی دوست بدار اونایی که دشمن بودی باشون دشمن باش دوستی و دشمنی تولی و تبری ولایت و براعت از همون افرادی که قبلا دوست داشتیم دوست جدیدی برنگوزین مولا جدیدی ولی جدیدی برنگوزین غیر از اونچه که اهل بیت بیان قرار نیست امام جدیدی بیاد، قرار نیست جدیدی بیاد، همون هایی که دوست داشتی با همون ها دوست باشه. سوم فرمودن اعرف امامک، معرفت به امامت پیدا بکن. معرفت رو بالا ببر، اگر طور شد فلا یا همکتقدم هذا الامر او تأخر. اگر این رو کردی دیگه مهم نیست که امر ظهور مقدم بشه یا مؤخر، تو معرفت به امامت رو داری، تو موفق شدی در دوران غیبت. و عذر کردیم که بعدش تصریح کردن که گفتن در دوران ظهور حضرت اگر هم از دنیا رفته باشد مؤمن به او ابلاغ می شود و می تواند رجعت کند و برگردد و نصرت کند عنوان چهارمی می بود که فرمودند تسلیم امر الهی باشید و این چنین تصور نکنید که غیبت برای شما بلا است نه غیبت برای مؤمن نعمت می تواند باشد و برای منافقین و کفار بلا و مصیبت است و پنجمین مورد این بود که عرض کردیم فرمودند که خودتون رو درگیر با حرفها و ادعاهایی که بیان می شود نکنید چرا که امر ظهور امری آشکار و روشن است اشاره کردن به روشن بودن و آشکار بودن و همگانی بودن امر ظهور بنابراین اون کسانی که مدعی می شوند که ظهور محقق شده یا در ابتدای زمان ظهور قرار دارید شما حرف های اونها رو و نظریات اونها رو قبول نکنید و ششمین عنوان عنوان براعت از اهل بدعت و مدعیان دروغین بود که شواهدی رو هم عرض کردیم که مثل امام هادی امام ابوالحسن عسکری علیه السلام چطور حضرت مقابله کردن با مدعیان دروغین زمان خودشون و حتی اونها رو تکفیر کردن و امر فرمودن به قتل اونها که از مدعیان دروغین و سران غلات بودن در زمان امام هادی علیه السلام. خب اگر در این شش شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید و وارد نه باشد. نکته ای که نیست فقط عرضم اینه خدمتون که یکی از جالبی که بحثی که شما ارائه دادید تو هفته گذشته داشت به توجه من رو به عنوان مستمع و مخاطب جلب کرد این بود که هر شش مورد ایجابی بود یعنی برخلاف همیشه که مثلا بسیاری از مواردی که بعضی از آقایون بیان میکنن سلبی و میگن گوش ندید این کارا نکنید مثلا فلان جا نرید. شما توجهتون به ظرفیت های درون روایات و درون عقاعد امامیه و شیعه بود و همش ایجابی بود میخواستم بپرسم موارد و که مطرح میکنید همه کمکان بر همین رواله و ایجابیه یا نوارد رواله دیگه میشه بله. سوال جالبه و تشکر میکنم ببینید ما بستگی داره که چطور نگاه بکنیم به این روایات اگر این روایات رو به این صورت ببینیم که داره وظیفه ای رو ب اما از یک نگاهی هم بعضیش ممکنه سلبی باشه که حالا واردش میشیم مثلا فرض بفرمایید که نفی توقیت یا نفی استعجال که خود همینا آن عناوینیه با یک نگاه می توانیم بگوییم توقیت گرایی و تکذیب کسانی که توقیت میکنن کد ول وقاتون تکذیب اینها جهت سلبی داره اما از یه جهت هم میتونیم با نگاه دیگه میتونیم بگیم ایجابی یعنی وظیفه رو, رو مشخص کردن که شما وظیفه‌تون این است که اینها رو تکذیب بکنید و سراغ اینها نرید به دیگران هم بیاموزانید خب مورد هفتومی که در روایات بهش فراوان اشاره شده است برای وظیفه شیعه در عصر غیبت و اینکه واقعا نجات دهنده است یکی از مواردی که واقعا خصوصا در فتنه های اینچنینی مثل مدهیانی دروقین واقعا ما رو نجات میدهد بحث عدم توقید و وجوب تگذیب موقتین هست و قاتون خب توقید معناش اول این رو ما واضح بکنیم ببینید توقید به دو نحو میتواند بیان بشود یکی به این سبک کسی ادعا بکند که توقید محدد بهش میگید یعنی چی؟ به بگوید که امسال حتما حضرت ظهور می فرمایم. حالا با اون پروسه‌ای که برای ظهور هست مثلا رمزان است بعد سیحه می شود بعد مثلا خروج فرض بفرمید حالا قبلش در رجب مثلا خروج صفیانی و خراسانی و یمانی مثلا فی سنت واحد فی شهر واحد فی یام واحد بعد سیحه رمزان می شود و با این سیره که در علامه ما ظهور هست و نفس زکیه و غیره اما بالاخره بگه امسال مثلا سال ظهور تحدید بکنه زمان مشخصی رو یا بگه این ده سال حتما تو این ده سال ظهور واقع می شود اینم توقیده یا بگوید تو این صد سال حتما ظهور واقع می شود اینم هم توقیده همش توقیده یعنی ما توقید رو اینجوری فکر نکنیم که کسی بگه فقط حتما این جمعه حضرت میاد بله ما باز این رو باید اول ارائزمون بگیم تا آخر بحث هم بزرگواران شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشن ما حرفمون درباره دعا کردن، توجه کردن، مطالبه کردن، درخواست کردن از خدای متعال برای قرب ظهور نیست اینا یقینیات ماست بحثمون در این است که اون چی که احلویت نه کردند به ما دستور دادن که مراقب اینها باشید مقصود احلویت چی از این؟ بگیم یکیش توقیت هست خب این توقیت تواند محدد باشد محدد یعنی زمان مشخص کنه یه سال ده سال صد سال حتما تو این صد سال اخیر امام از ظهور می‌فرما شما فرق برمی خب ما میگیم امروز یکی این حرف رو بزنه فرقی نمی‌کنه چه امروز یکی این حرف رو بزند چه 500 سال پیش یا هزار سال پیش کسی این حرف رو میزد اگر هزار سال پیش کسی می گفت مثلا حالا علمای شیعه که هیچ وقت این حرف‌ها رو نزدن یعنی توقیز نکردند اما اگر کسی میگفتش که بله یقینا تو این 100 سال حضرت ظهور میکنه خب شما فرض بفرمایید که 100 سال گذشته یک قرن گذشت و حضرت ظهور نفرمودن چه اتفاقی میفتد برای شیعیان چقدر تو کتاب ها نقل میشد و دسمایه مخالفان شیعه میشد که آقا ببینید اینا گفتن 100 سال دیگه حضرت ظهور میکنه نشد اگه فرض بفرمایید عبارت این توقید اگر محدود به زمان بشه نهی شده نه شده است اگر محدود به زمان این مهدد می شود بله این میشه مهدد یه نوع از توقیط هم باز غیر محدده یعنی چی یعنی من محدود به زمان نکنم محدود به یک واقعی ای بکنم یا به یک فعلی بکنم یعنی چی یعنی مثلا بگویم اگر ما فلان کار رو انجام بدهیم یا فلان عمل رو انجام بدهیم یقینا ظهور حضرت اتفاق میافتد توقیت غیر محدد یعنی زمانی رو نگفتن مثلا تو این و عمل مثال میتونید بزنید مثلا فرض بفرمایید حالا تو مثال روایتی که میخونم عرض میکنم آه. مثالشو حضرت پس وارد رو باید بشه. مثلا در اه... الغیبه نعمانی حضرت میفرمایند که یا محمد امام صادق علیه السلام به راوی میفرمایند من که اننا توقیتا فلا تهبن ان تکذبه هر کس از طرف ما حتا یعنی ما این سری روایاتی داریم روایت نهی از تکذیب اگر روایات از ما به شما رسید مگر جاهایی که اختصاصاتی که داری مثلا میتونید تکذیب کنید مثلا فرمودن اون جایی که مالا یکونو فی مخلوق اون چیزایی که جایز نیست در مخلوق یعنی قالب به علوهیت و روبویت برای ما میشه اونا رو فرمودن تکذیب کنید یا روایاتی که امر به تکذیب دادن یکی از مواردی که گفتن خودشون امر کردن تکذیب بکنید اینجاست یعنی چقدر تو اصرار کردن احلویت که تکذیب نکنید آنچه که از روایت ما رسید اگر نفهمیدید اما عدم تکذیب به معنی قبول هم نیستا اینه مد نظر داشته باشید یعنی یه موقعی من روایتی رو نمیفهمم یا معناش برای من واضح نیست یا مثلا ممکنه تقییتاً باشه یا با خاطر اختلاف در حدیث باشه هر چیزی یا سندش اصلا مشکل باشه جل کرده باشن اینجا اجازه ندارم عقص بکنم به اما اون که میدونن به قرائین به دست من رسیده و نمیتونم مفهومش رو بفهمم دلالتش رو نمیتونم بفهمم تکذیب نکنم خب اما اینجا فرمودن تکذیب کنید فلا تهابن انت كذبهو تکذیبش کن یقینا تکذیبش کن فانا فا لا نوقت الا احد ما هیچ وقت ایجاد تعین وقت نکردیم برای احدی بس اگه کسی اومد گفت حتی از قول ما نخصت شما تکذیبش کنید خب باز در کافی شریف برای مثال که شما فرمودید فرمود که انا ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام ابن مهزم نقل میکنه از امام صادق قال ذكر نوعين ملوک ملوك آل فلان میگه ما محضر حضرت بودیم گفتیم آقا این پادشاهان و شاهان و امراء آل فلان که حالا ظاهران بنی عباس مقصوده به خاطر تغییر موقع ما حرف این ملوك آل فلان شد بنی عباس شد فقال انما هلك الناس كافيه شریفه روایت انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر حاضر فرمودن شما که بعضی از مثلا شما که تصورتون اینه که ما بریم مثلا بنی العباس رو سرنگون بکنیم اگر بنی عباس رو سرنگون کردیم خب امر ایجاد میشه امر ظهور اهل بیت ایجاد میشه و دولت حقه اهل بیت ایجاد میشه ما این حرف رو به شما نزدیم انما هلك ناس شما تصورتون اینه که از خودتون این تصور رو دارید که فکر کنید الان بنی العباس یه حکومت ظالمه بنی عباسی هست این بنی عباس رو ما اگر رفتیم سرنگون کردیم حاضر دارم به این راوی اگر شما رفتید این بنی عباس رو سرنگو کردید خب دولت حق ما شکل میگیره میگه از این میفرما نه اینجوری نیست تصور غلط شماست هلاك شدن مردم من استعجال هم لحظه ارم چون تعجله کردن به خاطر این امر تصور کردن که با این مثلا حالا کارایی که انجام بدن و مثلا تلاشی بکنن وقتی به امر معهل بیت نبرد جای به امر اهل بیت بحثش جداست اهل بیت امر فرمودن که باید این کارو انجام بدی ولی وقتی به امر ما اهل بیت نبرد چه آم چه خواست فرمودن خودتونو هلاك کردید ان الله لا يعجل عجلت العباد خدا بخدا عجله کردن شما عجله نمیکنه عجله نداره که خدا بخواد بناز امتحان بشه بناز فتنه ها بیاد خب ان لهذا الامر غايتون ينتهي اليها این امر حالا دو تا معنی میشه کرد یکی این ملک آل فلان یعنی همین بنی عباس این هم یه غایتی دارن بعد برسه به غایتش شما هر چی زور بزنید نمیتونید این رو از مسیرش منحرف بکنه غایت و غایته یا اینکه یعنی امر مغصور امر ظهور ما باشه که امر ظهور ما یه زمان مشخصی داره باید برسه اون زمانش باید برسه با عجله کردن شما چیزی درست نمیشه که شما بگید ما بریم مثلا این کار بکنیم که حذر ظهور بکنن نه خب فلو قد بلغوها لم یستقدوا مساعتا ولم اگه موقعت موقعش بشه نه یک ساعت میتونید عقبش بگیاندازید نه یک ساعت میتونید جلوش بگیاندازید باید زمانش برسه بس عجله نکنید که فکر کنید ما این فعل رو مثلا انجام میدهیم با انجام این فعل یقینا ظهور حضرت محقق میشه استاد این تو امور و حوادث سال بحث ظهور من هم با اشاره به بحث ظهور و امر ظهور هم با اشاره به مباحث دیگه میخوام بپرسم این میگن تناقضی یا تباینی با مسئله بدع نداره بداء حاصل شدن این که شما عجله نکنید مثلا ما ممکنه یه موقع یه کاری بکنیم حالا تو همین امور مرسوم روزمره روزمرده زندگی یا به خاطر که تذکری هم باشه خدمت مثلا بیرندگان عزیز و خودم مثلا میگه شما اگه صدقه بدید قربانی بکنید مثلا یه بلایی از شما دفت میشه حالا. ما تو امر ظهور که امر مهمیه اگر یک سری کارهایی بکنیم این باعث اون زودتر رسیدن امر ظهور نمیشه حالا بگیم ببینید یک کارهایی از, از خود باز خود اهل بیت فرمودن که شما مثلا این کارها را انجام بدهید میتواند مؤثر باشد بخشی از ظهور در بخشی است از... نه اینکه دلیل قطعی باشد علت قطعی برای ظهور باشد حالا ما میرسیم بحث تمهید انشاءالله که معنای تمهید چیه و آیا تمهید وجود دارد برای ظهور یا نه و معنای تمهید برای ظهور حضرت چیه اما حالا اینجا به مناسبت که شما فرمودید که یه سری امور رو خود اهل بیان کردن مثلا همین دعا از دعای رد البلاء ولو ابرما ابراهما خدا بلا رو مرتفع میکنه با دعا کردن خب در امر ظهور حضرت هم ما موظف به دعا هستیم باید دعا کنیم اما نکته مهم اینه که ما علم به بدا نداریم لذا وقتی علم به وداع نداریم نمیتونیم که خ... نمیتونیم حالا من این کار رو کردم یا نکردم یا دعا کردم یا نکردم حالا بدا حاصل شده؟ ظهور محق... تحجیل میفته یا نمیفته؟ من نمیتونیم من وظیفه انجام بیدم باید دعا بکنم برای حضرت اگر دعا کردم که فرمودم وقتی شما دعا کردید و انتظار فرش کشیدید و دعا کردید اگر حضرت رو همون حرفی که بارها تکرار کنیم اگر حضرت رو دیدید اونجا نصرت میکنید اگر ندیدید بعداً در رجعت میکنید یعنی همش همش این رو تکرار کردم ما که نگران نباشید شما شما وظیفتون رو عمل کنید دعا کنید توجه کنید انتظار بکشید خب اما ما علم به بدا نداریم که لذا نمیدونیم که الان بدا حاصل شده است یا نشده است بنابر این اگر کسی برای ما وقت تعیین کرد چون اهل بیت وقت تعیین نکردن معذورین به تذکیه چون علم به بداء نداره. خبرم بود. ما نمیدونیم که الان مثلا با دعا کردن ما ظهور تأخیر افتاده یا نه افتاده نمیدونیم. بله این بداء ممکنه حتی در روایاتی داریم حالا این باز خیلی عجیبه. مثلا در روایاتی داریم که شما اذای کردید به خاطر اذای شما اصلا عذر ظهور تأخیر, تأخیر افتاد. شو. از راجب همینم هم می‌خواستم بله. بپرسم. یعنی بداء حتی ممکن اون طرفی باشد. برای همین ما نمی‌تونیم هم بگیم یقینا امسال نیست. اینم توقعیته دیگه. یقینا امثال نیست. مثلا یقینا 10 سال بعد میشه. بعد از 10 سال مثلا گفته بود که من محاسباتی کردم حالا معروف نبود خود من محاسباتی کردم به این رسیدم که یقینا امام اص علیه السلام مثلا حضرت بعد از 80 سال دیگه مثلا تو 80 سال دیگه حضرت نمیاد این اینم تخمیده اینم منیون یعنی هم. هم زمان مشخص کردن برای آمدن هم نایامدان آمدن. خودش هر دوش بس برای ما از این نشونه باید تکذیب کنیم این افراد رو نه ما دعا می‌کنیم ان که امسال بشود ان که این جمعه همه اینا اما وقتی علم نداریم اگر کسی اومد یقینی برام گفت شما با این کار یا با این فعل اگر این فعل رو انجام بدی حالا باز مثالی که تقریبا به ذهن میشه مثلا یه آقایی یه مشهور شخصیت مشهوری بودن یه مقداری ایشون گفته بودن که اگر ما بروان مثلا شیعیان حالا باید قضایا عینی بشه دیگه گاهی وقتا نمیخویم خیلی تئوری حرف بزنیم یه مقدار عینیت پیدا بکنه درد نیست یادوام یه جایی باید گفته بشه دیگه جوش همینجاست بحث تخصصی محدیات افته بودن ایشون که اگر ما حرکت کردیم و فلان مکان رو مثلا قصر حالا ایشون اسم قصر اگر ما قصر رو آزاد کردیم و شیعیان و فتح کردیم قصر رو یقینا حضرت بعد از فتح قصر بلافاصله ظهور می‌کنه و اگر فتح نکردیم مادام که ما قصر رو فتح نکنیم ضرور حضرت محقق نمیشه، از ظهر نمی‌کنه خب این حرف ساختگیه هر دو جهتش هر جهتش یکی این که بله یه موقع شما میخواید بفرمایید که ما وظیفمون این است که مقابله کنیم با ظلم این حرف دیگه است ما باید وظیفمون رو انجام بدیم و وقتی وظایفمون رو انجام بدیم یک اظهار ولایتی به حضرت اینو سر جا خودش اما اینکه من تهدید بکنم بگم اگر ما قرص رو آزاد کردیم بلافاصله حضرت ظهور میکنن این دروغ بسنه اصلا که نداره بعدم چیه حرف ساختگی فاجه مسجد الاخصال و اون سرزمین شام و فلسطین و اینا اصلا شما میفهمید حالا چه بحث آزادسازی چه بحث نه نه اصلا بحث این نیست که ما, ما چه نه. کاری میخواییم انجام می بدیم ور بزیر ترونه بحث بزی میگم روا... می اصلا تو روایت همچین روایتی داریم تو نه نه نه نه نه نه نه که مثلا شما میاد این کار رو انجام میدید بعد حضرت زهور میکنم ما همچه چیزی نداریم مثلا میگن صفیانی از شام ظهور میکنه درستو سفیانی جدا از سفیانی خودش شخصیت مزموم میاد شروع میکنه حرکت میکنه کور خمس رو فتح میکنه حکومتی تشکیل میده بعد میاد سمت عراق و حالا کور خمس میشه همون محدوده شام و اردن و یعنی از از شما که فلسطین و سوریه و اینها مجموعه یه محدوده خاصیه که میگن یعنی کور خمس اونجا تشکیل حکومت میده بعدم حرکت میکنه سمت عراق بعدم ظهور حضرت محقق میشه اما این به این معنا نیستش که ما اگر مثلا این کارو بکنیم مثلا فرض بفاهم یکی بگه که آقا خب سفیانی از علائم ظهور است خب ما میدونیم میگه پس من برم سفیانی بشم که از از دختر ظهور کنن میشه کسی هم چه حرفی بزنه نه صفیانی یه مسیری داره ظهور میکنه فرمودن حالا این علت اصلا علت بیان علائم ظهور اگر ان شاء باشد میرسیم باشه بهش که تصریحی کردن که تو روایت ما اصلا علائم ظهور رو برای شما چ... به خاطر چی به شما گفتیم خاصیت تحذیری دارد نه تطبیقی شما گفتیم که شما رو تحذیر کنیم از پیوستن به رایات زلا اما حالا عرضمون اینه ما می‌گیم این که بگن که فلان واقعه رو اگر انجام بدید بلافاصله بعدش از ظهور میکنن و اگر این کار رو انجام ندهید حضرت ظهور میکنه. اینم ساختگیه یعنی آقا تا شما نروید مثلا قصر رو فتح بکنی حضرت ظهور نمیکنه نه هم حرف غلطی کی گفته و حضرت تشریف میارن با حضرت میمون قصر رو فتح میکنن که در روایات هم داریم که خود حضرت قرص رو فتح میکنن در روایات داریم عیناً در روایات که وقتی سفیانی میاد رو اینا فتح قرص به دست خود امام علی اصال الله و سلام داره حالا جدا از بحثسنه دیگه اینا اما عرضم پس این بود که ما معلق نکنیم ظهور را در بحث توقیت غیر معین معلق کنیم ظهور را به یک فعل خارجی یک فعل مثلا خارجی ما اگر حکومت شیعیان جمع شاین و حکومت بن بنرب... لباس رو سرنگون بکنیم این یک امری میشود که مثلا یقینا موند... حضرت ظهور میکنن حضرت این روایت دقیقاً همین میفهمه حضرت میفهمن نه اینجور نیست شما با این عجله کردنتون فقط خودتون رو هلاك کردید حضرت سوالی که میخواستم از خدمتتون بپرسم راجع به همین بحث تکذیب و قاتون و فرمودید این وقت تکذیب وقتی صورت میگیره که محدود باشه حالا یا, یا ب... به زمان یا به امر خاص یا واقعه خاصی چند سال پیش یکی از مراجع که از ر... به رحمت خدا رفتند از اون سوال کردن راجع به ظهور ایشون فرمودن که ظهور نزدیکه و یعنی پرسیدن که بعد از درس خدمتشون رسیده بودن که آقا ما جوونا میتونیم امیدوار باشیم به امر ظهور ایشون فرمودو بودن که پیرمردا هم میتوانند امیدوار باشند این آیا مساق تعیین وقت هست یا نیست همین ببینید شما خورتون عبارت رو خیلی صحیح نقل فرمودید که ایشون میگن که سوال میکنه شخصی شخص حالا اون کسی که سوال میکنه از ایشون برسه که آقا ما امید داشته باشیم ما جوانا امید داشته باشیم به ظهور حضرت ایشون میگه که پیرمردها هم باید امیدوار باشن پیرمردهاتون هم امیدوار باشن چرا فقط این یعنی چی یعنی این فرق داره با تووقیت این بحث همون امید بحث انتظار کالا یکی از همین اناوویی که میرسیم انشالله انشاال امشب بهش بحث انتظاره انتظار یعنی یعنی ما همیشه امید داشته باشیم که به ظهور حضرت رو ببینیم خب همانطور که جوان امید داشته باشد گفتیم گفتیم ما امید باشیم اگر کسی گفت حتما حضرت تو این ده سال ظهور نمیکنن دروغ گفته چرا چون این توقیت خودش پس من باید همیشه امید داشته باشم که امسال ظهور محقق بشه و اماام رو ببینم. چه جوان باشم چه پیر خب این شخص میپرسد آقا ما جوونه امید داشته باشیم ایشون میگن که خب پیرمرداتون هم امید داشته باشن همتون امیدوار باشید به دیدن ظهور امام عصر پس این نمیخواد زمانی رو مشخص بکنه که بگه حتما در این مثلا ده سال یا 20 سال یا سی سال حضرت ظهور میکنه میخواد بگه امید به ظهور حضرت این وظیفه ماست و امید به ظهور حضرت چیزیه که همه باید امیدوار باشن شاید محقق بشه کسی نمیتونه بگه که حتما محقق نمیشود کمایی که کسی نمیتواند بگوید حتما محقق میشود پس بنابراین باید همیشه امید داشته باشه اما تکیزی به وقت یعنی چی؟ یعنی اومده گفته حتما توی این سی سال یا توی این ده سال امام ظهور میکنند و حتما شما میبینید حضرت رو و مثل آقاش همین دیگه یعنی توقید کار مدعیان دروقینه با ادعای توقیتی میان یا رو برای خوریشون میکنن میگن الان زمان ظهوره شما الان ببینید اطبای احمد اسماعیل یا هر کسی دیگری از این مده یا مسرور حاشمی خلاسانی همه اینا میگن الان زمان ظهوره خب این از کجا درآوردی تو؟ که زمان ظهوره؟ به چه ادعایی؟ علایم محتوم که هیچ کدوم واقع نشده بله وقتی محتومات واقع شده ما میفهمم زمان ظهوره. محتموم که هیچ کدوم واقع غیر محتوم هم هیچ کدومش حتی غیر محتومات هم هیچ کدومش یقینا نمیتونیم تطبیق کنیم یعنی با یکی از این یک غیر محتومات رو هم تا حالا ندیدیم که واقعا بتونیم صد درصدی تطبیق بکنیم غیر از محتومات که هیچ خب میاد میگه که بله آقا الان زمان ظهور و بیاید یار جنبشین یار جنب بکنیم و ما داریم مثلا زمین سازی می کنیم داریم مقدمه سازی می کنیم داریم لشکر جنگ می کنیم برای امام این توقیت تعیین زمان خودش چیه بهانه میده به دست مورده درو غیر از اینکه اون ف... تالی فاسدهایی که ارز کرده مثل ناامید شدن شیعه ناامید میشه شیعه وقتی توبید شد و اینه این که تو این حد مثلا میگم حالا اون چیزی که حافظه تاریخی ما یاری میده مثلا از زمان علی محمد باب و اینها معمولا با این عنوان شروع شده که من ارتباط دارم امر ظهور نزدیکه و در نهایت تبدیل شده به فرقه و دین و مثلا ادعای مهدوی بله و بعدم ده ها سال و صد ها سال گذشته و هیچ خبری هم نبوده هیچ خبری نبوده و واسه انحرافی شده بله، در عقالو بله، دو همین یعنی هیچ کدوم واقعا به قصد اون این که ما بیایم یار جمع بکنیم و بیایم یه کاری بکنیم و کمک کنیم به امر ظهور نبوده در حقیقت یار جمع کردن برای دکان خودشون بوده توقیت بهترین بهانه برای جمع کردن یار بوده برای اینا وقتی توقیت می‌کردن زمان مشخص و تهدید زمان می‌کردن می‌گفتن خب حالا زمانه پس بیا جمع بشیم لشکر یمانی تشکیل بود بیا جمع بشیم لشکر نواع بیا جنب... پس اگر زمان ظهوره پس من به حضراتم اگر زمان ظهوره پس ملاقات همه اینا یک است این قضیه فا فکر بوجا این مقابله‌ای که شما دارید میکنید با این قضیه به خاطر این چیزی که اون به خاطر نگرانی شماست که اگر ما ما این کارو بکنیم مثلا میگم همین مثال شما رو ما آوردیم که ان محقق بشه فتح قدس مثلا اگر حالا یا این یا هر کار دیگه اگر این کار رو بکنیم ظهور محقق می شود و این کار رو بکنیم به چون جزء علام مهدویی نیست محقق نشود به واسه ناامیدی بشه درست فکر کنم یکی از این... جهتی که شما مقابله می‌کنید این مبارزه با اون ناامیدی بعدشه هم ناامیدی بعدش هم الان ناامیدی میاره یعنی کسی که به شما گفتم دو طرف هست دیگه کسی که میگه ما تا رو نکنیم حضرت ظهور نمی‌کنن و اعلام وفاداری به حضرت نکردیم تو قبل از یعنی تکذیب کرده ظهور حضرت رو حالا معلومه نیست ان که زودتر ولی معلوم نیست کی قرص واقع بشه که بس یعنی یقینا امثال حضرت ظهور میکنن حالا تا وایس ببینیم کی قرص واقع میشه این داره تق... توقید میکنه یعنی من رو ناامید کرد مؤمن رو ناامید کرد از اینکه امثال ظهور بشه چرا یه چون, چون خیلن... یه جهتشم اینه که امسال قطعا پس ظهور نمیشه دیگه از این طرف ناامیدش کرد از اونورا اگر بشه و حضرت یاد ناامید غیر از اینکه چیه دلیلی برش نداری یه نفر بودید خب خیلی ممنون این بحث وقت تمام شد یا وقت رو آره دیگه روایتش رو نمیخونیم طولانی میشه چون اگه فر... یه این روایت دیگه هم بخونید چون بحثیه که خیلی باشه باز روایت دیگه باز این کلیدی حضرت میفرما که روایتش متواتر است در الغیبه نورمانی کمال دین همه کافی شریف میگه عبی بصير میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم سالتو عن القائم علیه السلام فقال كذب الوقتون ان اهل لا نوقت ثم قال این نکشه مهمه اب الله الا ان يخلف وقت الموقتين. اصلا خدا عباده ره. الا این که اگر اومدن توقید کردن یعنی همون بردا که از شما فرمودید و بنده عرض کردم که این طرفیش گاهی وقتها اتفاق می افتاد حضرت تاکید میکنه میگن اگر رفتی تو دامن توقیت خدا برای اینکه شما رو تکزیب بکند اون وقت رو بدعا میکنه و عقب میاندازد یا کذب وقت الموقتين عوض میکند این اصلا ممکنه باعث تغییر جریمه میشید جریمه میشید وقتی اومدید به خدا دروغ بسید به ائمه دروغ بسید وقتی اومدید یه مسیر ورتلی رو گذاشتید خود این به وقتل وقاتون خدا میگه تکذیب میکنه اومدید یه تاریخ مهدد کردید خدا میگه به خاطر اگر بنا بوده خدا میگه به خاطر اینکه شما تکذیب اگر میشود... بنا بوده از امسال ان شالله، ان شالله. اگر بنا بوده بشه امسال امر ظهور محقق بشود چون شما اومدید نشستید و گفتید امسال ظهور امام زمان حتش چون دروق... اینجوری بگیم چون دروغ به خدا بسیدید شون دروغ به خداوند بستید خداوند خداون تخیر میاندازه بله حیفود این رو باید تا بله بله خدا تخیر میاندازه و تکذیب میکنه دروغ بگویان رو خب لذا ارزم اینه این توقید واقعا چیزیه که حالا جلو از بحثای خارجی که هست در داممون دهیان افتادن چیزیه که ما رو به حلاکت میبره ما رو به ناامیدی میکشاند ما رو به مشکل میاندازد چرا توقییت بکنیم؟ ما وظیفه رو وظیفمون رو می دانیم و انجام میدهیم و امید داریم که حضرت رو ببینیم بدون اینکه توقییت بکنیم وظایف ما مشخصه انجام میدهیم دهیم شاء حضرت امسال ظهور بکنه ان همین جمعه ظهور بکنه و ما در رکابشون باشیم بدون اینکه توقیتی بکنم بدون اینکه بگم حتما با این فعل من حضرت ظهور میکنه چرا این دروغ رو ببندن بخورم خب عنوان هشتم عنوان استعجاله حلی کل مستعجلون باز حالا تو عزیز ربارت کنار هم اومده که کذب البقاتون و حلی کل مستعجلون خب یه ربارتون همون ربارت مثلا قضیه بن عباس که عرض کردیم که حضرت فرمودن که شما با استعجالتون خودتون رو حلا کردید خب استعجال مفهومشیه یعنی مطالبه کردنه و طلب یک فعلی رو با عجله از باب استفعال یعنی طلب کردن معنای استفعال میشه طلب من طلب میکنم با عجله یک چیزی رو یعنی چی باز یه اشاره هفته گذشته داشتیم اما چون امشب به وارد رباطه شدیم یعنی چی فرقش با دعا کردن برای تحجیل در فرش حضرت چیه؟ فرقش این است که من در دعا کردن میخواهم از خدا که خداوند متعال امر ظهور رو محق تحجیل بیندازد جلو بیندازد اما در استعجال من خودم طلب میکنم من میرم یه فعلی رو انجام میدم که گمانم این است با انجام این فعل امر ظهور تعجیل میفتد خودم رو نزدیک کردم به ظهور یا ظهور رو کشیدم جلو به سمت خودم طلب عجله کردم یه چیزی رو خواستم بکشم سمت حضرت فرمونن احیمه فرمونن با این کار خودتون رو حلاک میکنید با عجله کردن خودتون رو حلاک میکنید شما نمیتونید با این کارایی که تصور میکنید شما نمیتونید با عجله کردن خودتون بله دعا بکن وظیفته و وظایف خودت رو انجام بده تو حیته وظایف خودت وقتی انجام میدهی عمل به وزیفه کی کردی خب بله ممکن خدا ببینه مؤمنی دارن عمل به وظیفه میکنن لطف الهی شامل حال مؤمنین بشه و چی امر ظهور تعجیل بیفته اما فرق داره با این که من بنام یه کاری رو بکنم با این ادعا که من میخوام ظهور رو محقق بکنم مثلا چی مثال بزنم براتون بعضی‌ها میگن آقا حساسی 300 نفر یار داره خب ما بیایم چیکار بکنیم بیای مثلا 300 سی سیزه نفر بشیم عهد ببندیم پیمان ببندیم که آقا ما میخوایم 300 و 300 نفر یاره چهره شما باشیم خواسته شما باشیم انصار خواسته شما باشیم و مثلا یه تشکیلات رو رسونن که ما که تشکیل شده به همین قصد در تاریخ یعنی گروه‌هایی بودن که به همین نیت تشکیل شدن در تاریخ ما داریم و امروز هم هستن بعضی‌ها این حرفا رو میزنن حالا به عنوان گروه و بعد مثلا کارهای خاصی انجام بدن ازلت بگذینند و مثلا اعمال خاص رو انجام بدن و اعلان کنند که آقا ما چکار کردیم، ما آمدیم و سی سر نفر یار شما شدیم و خالصانه ازلت گذیدیم برای نصرت شما خب بگیم این حرف غلطه. چه کسی گفته از که شما باید این سی سر نفر رو مثلا محیاب بکنید؟ بعد دست ماست مهیا کردن 300 سیزه سی انتخاب اینا با چه عنوانی دست شما افتاد دست ما نیست بله من به عنوان مؤمن باید وظایفم رو انجام بدم که اگر امسال زوره حضرت شد منم امید داشته باشم که یکی از این 300 نفر باشم اگر نباشم از حلقه تکمیلی باشم تکملت الحلقه باشم که ده هزار نفرن اگر نبودم از اون حلقه باست تکمیلی تر باشم که فرمودن شیعیان ما میایان و ملحق میشن دیگه خیلی عظیمیت شیعه که کوفه به کربلا متصل میشه و شیعهان میانه بلاخره من امید داشته باشم و انجام وظیفه داشته باشم برای اینکه جز به این انصار خواسته باشم اما چه کسی گفتی که من بتونم این 337 رو محیا بکنم دست من محیا کردنش نه بسی ما نیستش که 337 رو جهن بشه مثلا هر هفته مثلا سر به بیابان بزنیم میگیم آقا ما 337 رو پس بیا دیگه و بعد مثلا یه حرف دو هفته ده گفتم جا... رفتی و هیچ خبر نشد خودمون آره ناامید میشیم این این بحثش روشنه خب یه جهت دیگه بپرسم مثلا همین روایتی که فرمودید مثلا در زمان ظهور کوفه به کربلا متصل میشه درسته یا مثلا میگن امام زمان حالا روایاتی هست که مثلا از شهر قم مثلا سه نفرن یک نفرن از فلان شهر یک نفرن از فلان شهر, از فلان شهر مثلا 20 نفرن من به این امید که مثلا جزء اون برم در اون شهر زندگی بکنم یا مثلا حالا که در زمان ظهور کوفه و کربالا به هم متصل میشه ما مثلا الان من تو عراق زندگی میکنم بیان برم تو اون نواهی منزل بخرم زمین بخرم برم اونجا کمک کنم به گسترش کوفه مثلا به سمت این جور امورچه اینا مستاق اون استعجاله هست یا نیست بینه حالا بعضی از این رفتارها رفتارهای, بگیم رفتارهای عاشقانه است. نمیشه میشه گفت استعجال؟ مثلا یکی فرض بفرمایید. خیلی علاقه داره به کربلا و به حرم امیرالمومنین میره ساکن کربلا میشه ساکن نجف میشه یکی هم علاقه داره به اینکه مثلا حکومت حضرت مثلا باشد در حکومت حضرت هیته حکومت حضرت میاد مثلا اینجا ساکن میشه ولی به خاطر این ما امری ندیم که شما به خاطر این که مثلا در حکومت حضرت باشید برید مثلا فر بفرمایید کوفه ساکن بشوید نه همچین چیزی ندید بله اون موقعی که از ظهور بفرمایید حالا میرسیم به روابطش انصار خاصی حضرت که اصلا غیر به حضرت ملحق در یک شب بدون میاد ملحق میشن که تو رواید دارم که اصلا این همدیگر رو نمیشناسن این سی و سی نفر فرانسار حضرت اصلا همدیگر رو نمیشنسن یعنی مقاید قبل از این نداشتن و در یک شب بدون میاد ملحق میشن به امام است بس این که من برم مثلا کوفه بشونم نه برنامی از اگه من کوفه بودم حد حضرت رو نصفت بکنم علا زهر کوفه ممکن ممکنه افرادی میان که با حضرت بعضی از افرادی که بتریه و اینها مثلا در دولت بروشون سر شده است ویژگی‌های خاصی دارن، اما خارج ازش هستند اما عرضم اینه که ولی یه موقع به بفرمایید که میگه که نه به خاطر اینکه مثلا قم عش آل محمد روایتی که در فضل قم اومده من میام اینجا زندگی میکنم حالا امید دارم که جزء انصار حضرت هم باشم اما همچین امری میخوام بگم همچنین امری ندیدم که شما برید مثلا برای اینکه مساقین بشید غیر از اون روایتی که فرمودید چون خب یه خبر متوردی هست روایتی که تهدید میکنه از هر شهری افرادی می خبر متفردی و ضعیف السند و لزاما نمیتونیم به صورت قطعی توی بحث مهدویت بهش اتکا بکنیم اما خب اینا چیه ای که متواترات هست و در کتب یقینی ما آمده است و اون خبر هم حالا غیر از که متفرده از منابع بسیار متأخره مسلمه میگم مرض الای هال مرض باریکیه بین تمهید و استعجال و انتظار و بله حالا هر کدوم وقتی همه این علاوی رو وقتی بهش رسیدیم تفاوتاش مقدار واضح میشه, میشه و وزیفه مونم واضح میشه رواهات اهلویت روشنگر به همدلله خب باز یه روات دیگر مثلا در هم استعجال بخونم کفاید میکنه حضرت فرمودن که امام سعادق علیه السلام حلکت المحاضیر قال قل تو ومل محاضیر حلک شدن محاضیر محاضیر به این اسبهای توندروی میگن اسبهای مسابقه میگن, میگن که تندرو هستن اینا حضرت مثال زادن اینا راوی میگه گفتم محاضر چی؟ محاضر رو میدونه چی؟ مقصودتون از این محاضر چی؟ حضرت میفرمونه که قال المستعجلون منظورم مستعجلونه کسایی که عجال کرد و نجل مقربون اما کیا نجات پیدا کردن؟ کسایی که دعا میکنن برای قرب توقع قرب دارن استعجال نمیکنن اما امید دارن که نزدیک باشد وثبت ثبت الحسن اوتاده اوتادها کون و احلاس بیوتکون شما آماده باشید. شما به وظیفه‌تون عمل بکنید اون موقعی که زمانش بشود چه شما هم ملحق میشید. بعد حضرت فرمودن که و انهم لا یریدونکم بجائحه الا اتاهم الله بشاغر الا من تعرض لهم حضرت فرمونن اگر خودتون مراقب خودتون باشید کسی هم نمیتونه به شما ت بکنه کسی نمیتونه به شما زور بکنه توی زمان غیبت وظیفه خودتون رو بشناسید حتی در زمان مثلا سفیان ها که بعضیش اشاره به اون زمانه کازا فرمود در زمان زمانه سفیانی حضرت فرمودن که مراقب باشید وارد با درگیری با اونها نشید وارد این مخمسه ها و ملحمه هایی که هست در اون زمان نشوید خدا جان شما رو حفظ میکنه مثلا در روایت خیلی قشنگه حضرت میفرمان که از امام باقر علیه السلام هست. حضرت میفرمان که افراد میان در قبل از ظهور حضرت قتل الهم شهدا قیام میکنن و کشتگانشون شهیدن قتل الهم شهدا و بعد می فرماند که و لا یدفعونها الا الا قائم کن و رایتشون رو هم تحویل میدن به امام از یعنی وقتی قیام میکنن اینها بعدش ملحق میشن به امام از اما این چقدر دقیق حضرت, حضرت وزیفه ما رو بیان کردن تو روایت می که اما انی لو ذلك ذالکه لستبقیتو نفسی لصاحبها دل امر اما من امام باقیر دارن به ما یاد میدنی فهم می‌فهمی اما اگه من دوران این بودن لسب غیظ نفسی من رو هرز میکنم برای کی؟ لساحب هازل امر. یه جون می‌شدن ندارم که میخوام جونمو فدا امام زمان بکنم. قتلهم شهدا، شهیدن باطل نیستن‌ها. قتلهم شهدا. اوناییشون هم که باقی موندن ملحق میشه اما من نمی‌دونم شاید تو تو اون راयत مثلا فرض بفرمایید اگر گفتیم رایت یمن رایت حق است. حالا بحث یمنی مفصله چون روایتش روایتی که اشاره می‌کنه به حق بودن رایت رمانی فقط دو تا روایته. ما الان نمی‌تونیم وجوب تبعیت ازش رو برداش بکنیم اما حق بودن رایت رمانی رو ما قبول میکنیم فلجمله جمله اگر گفتیم رایت یمانی حق است بله اما من میتونم ذیل رایت یمانی کشته بشه و میتام ذیل رایت امام عاص از هم که خب ذیل رایت امام از, خب از کشته بشه تو لشکر امام از در رکاب امام از کشته بشه خیلی باادطر در رکاب کسی دیگری خب حضرت فرمودند پس مراقب باشید حتی در دوران سفیانی و فتنه هایی که میشود در غرب ظهور هم شما میتوانید جان خودتون رو حفظ بکنید. پس اینم بحث استعجال که اصلا ربطش خیلی زیاده. نهی از استعجال که من وارد جریاناتی و دعاوی و ادعاهایی نشوم که این چنین ادعا میکنن که بله با این فعل یا با این یا با این عمل ما میتونیم ظهور حضرت رو نزدیک بیاندازیم. اینها مساق استعجال است و عجله کردن است و جزء هلاکت خودم نتیجه دیگری ندارد. پس چه کنم؟ وظیفه خودم رو بشناسم و عمل بکنم. اگر وظیفه رو شناختم و عمل کردم، حالا یکی از وظایف رو میگیم وارد بحث انتظار فرج میشه. آقای علی در اینستاگرام سوال کردن آیا روایتی که درباره چهل شب تشرف به مسجد صحنه که باعث دیدار و رؤیت حضرت میشود صحت دارد یا خیر. ببینید حالا ما این رو یه بحث مفصلی داریم درباره ملاقات با حضرت که اصلاً بحث ملاقات با حضرت و رؤیت حضرت به چه معنای آیا ممکن هست یا ممکن نیست و آیا ما امری و دستوراتی برای ملاقات حضرت در دوران غیبت داریم یا نه که دستوراتی داده باشن که مثلا این کارها رو انجام بدهید در دوران غیبت حضرت میده اما به صورت مطلق ارز کنم خدمتشون که نه ما هیچ دستوری به چله گرفتن برای رؤیت حضرت و ملاقات حضرت نداریم دستور به چله گرفتن داریم در موضوعات مختلف اما برای ملاقات با امام زمان ن ببینید چله گرفتن هم باید ببینیم maksud چیه مثلا بعضی از اعمار رو داریم که مثلا میگن این رو چهل روز انجام بدید به این عنوان اما چله گرفتن به این عنوان تو روایات چله گرفتن به این عنوانی که مثلا بروید در یک جای خاصی بیتوته بکنید و مثلا عمل خاصی رو انجام بدید چله نشین اینجوری بهش بگیم میگم عدد چهل تو روایات ما هست دقت کردید و خیلی رو بعضی از جمع کردن مثلا مخصوص به عدد 40 شیخ صدوق در مثلا خسال و اینها اما عزمون این است که جدا از عدد چهل این که چهل نشینی بکنیم برای یک کار خاصی این هم به این عنوان چهل نشینی در روایت نداریم روایت چهل نشینی هم نگفتن و گفتن چهل شب تشرف یعنی نه نه نداریم همچین چیزی خود مسجد سهله اعمالی دارد آدابی دارد از کاری دارد که انسان مقام اونجا دارد. بله مقامهایی دارد از بخواند و از جمله این که خب گفتن اونجا یه مکانی است مثل سرداب غیبت مثل مسجد سهله مکانهاییش که می... انسان می روید اونجا و توجه میکنه یک شب بیتوته در اونجا خیلی یعنی برایش اون فکر کنم روایتش هست بیتوته در مسجد سهله این که باز مثلا اگر بگید بیتوته اگر شب در مسجد سهله بکنید حضرت رو میبینید حضرت رو, رو میبینید نه همچی چیز مفصلی داره انشالله بهش خواهی رسید خیلی ممنون و متشکر سوالات فعلا تمام شد حاجه آقا ان ما ادامه‌ی م... بحث رو بفرمایید تا فرصت داریم که ان بتونیم جمع کنیم ان شاء ما مورد آخریم که امشب می‌خوایم بهش برسیم، باز اگر عمری بود شبهای آینده موارد دیگری رو عرض کنیم این عنوان است که یکی از وظایف ما در دوران غیبت احیاء امر اهل بیت و انقاذ شیعیان از چنگ نواصب است. یکی از وظایف است. حالا خصوصاً کسانی که علمی دارند یا خدای متعال به اونها امکاناتی رو داده است و علمی رو داده است و بحری از علوم اهل بیت و السلام دارد. ما وقتی نگاه می‌کنیم بر روایت اهل بیت می‌بینیم که یک جهت جهت وظیفه است و یک جهت جهت است که این کار دارد یعنی این کار نجات ایتام آل محمد و نشر و علوم اهل بیت برای اده از افراد وظیفه است که اون علماء هستند و برای دیگران که شیعیان هستند، عموم شیعه هستند، برای اونها هم وظیفه است چی؟ تعلم یاد گرفتن. باید برون و یاد بگیرند. اگر وظیفه عالم است که یاد بدهد و نشر بکند علوم اهل بیت رو، وظیفه مؤمن و شیعیان هم این است که برون سراغ علما و اخذ بکنن علوم اهل بیت رو، یاد بگیرن علوم اهل بیت رو. چرا چون اگر نرویم همین بساته می شود که امروز دارین میبینیم متاسفانه در بعضی از جواموردها بعضی است. هر عصر و قرنی که می آید یکی می آید و یه علامی بلند می و یه ادعای مطرح می کند و ادعایی رو دنبال خودش می و جالب اینه روایتی داریم از محاصر علیه السلام حضرت می فرماند که مامن احدن یدعو بالالن حالا مضمونش رو حس می کند الا ویجد و من یتبعو خیلی حجیبه که اصلا در دوران غیبت چیزی به شما بگیم احدی نیست که دعوت به زلالتی میکنه الا اینکه اتباعی پیدا میکنه یعنی این قضیه از خراب میشه یعنی هر که هر دعوتی بکنه بالاخره یه افرادی یه عده‌ای دنبالش میرند و این متاسفانه علتش همین جهله خب ما یک ابواب خاصی در روایات اهل بیت مثلا کتاب احتجاج مرحوم طبرسی یا تبرسی هر دو گفتش هست یا مقدمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام اونجا یه سری روایات آورده در وظیفه علمای شیعه برای انقاض شیعیان و عجری که این عمل دارد پس این هم یکی از وظایف ماست عرض کردم در رجه علمای شیعه بروند بیاموزانند و شیعیان هم بروند بیاموزند و عکس کنند این علومه اهلوت رو فرمود مثلا امام عسکری علیه السلام و قال الامام و اشد دومنیوت مهادل یتیم میدونی یتیم حقیقی کیه؟ کی یتیمه؟ از دارن مثال میزنند و اینها همه آماده کردن برای دوران غیبت امام اسکری مهیا کردن شیعران رو برای دوران غیبت بیش از بقیه ائمه همه ائمه مهیا کرده اما امام اسکری بیشتر دارن این فضا رو آماده میکنن و شد من یت ما هذا الیتیم یتیم ينقطع عن امامه لا یقدر على وصول على الوصول الیه یتیمی که از امامش منقطه نمیتونه دستش به امام نمیرسه خب چه کنه ولا یدری کیف حکمه فی ما یبتلا من شرایع دینه نمیدونه کجا بره نمیدونه حکمش چیه در شریعت دینی شعر در احتبازاتش الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا اگر رفتی عالم به علوم ما شدی و هادل جاهل به شریعتنا و رفتی این جاهل به شریعت ما عن من شا... المنقطع عن عن المنقطع عن مشاهدهتنا یتیم فی حجره الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعت شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی اگر رفتی جزو به ما شدی که اومدی دست این شیعهی ای که دستش از ما کتاهه و یتیم شده به خاطر نبودن امامش و در چنگ نواسب و شبه افکنان افتاده است اگر رفتی اون رو نجات دادی کان معناف فر رفیق الاحلا در رفیق الاحلا و در اون جایگاه اعلی الاحی در بهش هم نشینی با اهل بیده این وزیفه ایشی هست باید انسان در دوران و هر دو طرف باید این کار رو انجام بدن. باز در روایت دیگر از امیرالمومنین فرمود چقدر اینش روایت شیرین است می که من کان من شیعتنا عالم من به شریعتنا و اخرج ضعفاء اشیعتنا من ظلمت جهله اگر عالم به شریعت شدی هر در حد خودش ها ما نمیگیم که آقا مثلا فقط بفرقه های اعظم شیعه محدثین اعظم نه هر در حد خودش یکی یک شخصی فقیه هست محدث بزرگ است در حد خودش کتاب می نویسد بیہار می نویسد غیر و غیر. کسی دیگری پوینتر از اون میاد اینها رو کلاس درسی میگذاره در کلاس درسش می، تعلیم میکننش علوم اهل بیت. کسی دیگری پوینتر از اونها در خانواده خودش دوستان خودش، زنش، بچه‌ش، فرزندش، رفیقش شبهه ای داره براش حل میکنه یا دست اون رو میگیره در دست یک عالم میگذارد که شبهش حل بشه. خب همه اینا هر کس در حد خودش وظیفه‌اش این کار رو انجام بده. نکته اینه. یعنی ما اگر هر کدوممون به این وظیفه‌مون عمل بکنیم و فقط به دوش افراد خاصی نگذاریم اگر پدر از حقوق فرزند بر گردن پدر یکی همینه که علوم شریعت رو بهش یاد بده اگر پدر علوم شریعت رو به فرزندش یاد بده در حد خودش یا آقا من بالاخره پدرم یه عمر رفتم تو مسجد پای منبر اون چیزهایی که یاد گرفتم بیام به بچه هم یاد بدم به نواه هم یاد بدم. خب فقط گردن علما و فقه های فرمود کسی که این کار رو انجام بده هر روز قیامت یک تاجی از نور خداوند متعال بر سر او میذارد که تمامی عرصات قیامت رو و اون تاج نور نورانی میکند و همه حسرت میخورن به جایگاه و مقام او دارد باز فرمودند که فضل و کافل یتیم آل محمد فضل کسی که کفالت میکند یتیم آل محمد رو ال منقطع عن موالیه الناشه فی تی کسی که افتاده در سرگردانی جهل و در حیرت جه و میراد اون رو نجات میدهت یخرجهم من جهله و یوضح له ما علیه از جهلش اون رو خارج میکنه شبهاتش رو رفع میکند فضلش چیه علا کافله یتیمنی یطعم و یسقیه در مقابل کی این یک کسیه که اومده کفایت کرده و کفالت کرده به خاطر چی در امر دینش و یه شخص دیگر این هست میاد کفالت میکنه شیعه رو در امر چی در امر ظاهرش در تعامش و در آشامیدنش یعنی می میاد او رو سیراب میکنه فضل این دوتا از هم قده فرمود که شمس شمس علستها مثل برتری شمس از خورشید است بر ستاره سوها که کم نورتری ش... ای که در آسمان هست فرمودم مثل فضل اولش فضل. که این عنوان نهم رو فرمودید احیای امر ب... اهل بید و انغاز ایتام آله محمد از دست نواصب من به نظرم اومد که منظور از ایتام همون یتیمی به معنی مستلحه اما با روایتی که فرمودید دیدم نه خیلی عام‌تر معناش از اون معنای مستلح بله بله اصلا یتیم در رواتش خیلی زیاد فراوانه که ایتام عالم محمد یا یتیم من یتیم نهای غیره همش مقصودش همینه اصلا مقصودش یت، یتیم ظاهری نیست مقصودش اینه که الامام ال ابوشفیع والوالد و... والوالد و... والوالد و... الاب الرحیم والوالد و شفیق امام پدر رحیم است و والد شفیق است. لذا وقتی به این نگاه میکنیم به این روایت ها رو میبینیم که مزورت کسی که امام بالا سرش نیست واقعا چه یتیم همین جا حضرت فرمودند که چه یتیم از این بالا باز در روایت دیگه یه روایت دیگه برای نمونه من بخونم فرمودن که علما و شیعتنا امام صادق علیه السلام اللہ علیه سلام مرابطون فی ابلیس و لد علمای شیع... شیعان ما در دوران غیبت مهم اینه اینه همهش مقصود دوران غیبت رو دارن تصریح کردن در دوران غیبت که حالا باز میخونیم که مرابطن یعنی حفظ میکنن فتقره در اون کمینگاهی که ابلیس و افاریت ابلیس کمین کردند که شیعان ما رو بدوزدند و غارت کنند دین اونها رو ببینید در دوران غیبت واقعا کمینگاه شیطان است هر جا شما میردید ببینید یه کمین یه جا ملحد هست یه جا آتیستان یه جا نمیدین های زالن یه جا از اینجور شما که اعتقادات در امور دینی و ظاهری و توسلات و اعتقادات که مربوط به شبهات وحابیت و اینها میشود اینها رو میان تشکیلید یعنی هر جا شما برید یک نوعی از این شبهه و تشکیلی در اعتقادات رو میبینید اما نکتش اینه که همینها الکفر و ملتتون واحده همه اینها یه ملتن همش یه چیزه وقتی نگاه بکنید همه اینها به هم متصلن یه هدف دارن و اون هدفشون اینه که چی؟ کمینگاه ابلیس است این برای اینکه شیعه رو گمراه بکنن حالا به هر عنوانی باشه یکی رو با الحاد و آتئیست یکی رو با وهابیت یکی رو با احمد الحسن یکی رو منصور حاشمه خراسانی یکی با که در توسلات و اعتقاداتش دوری از مجالس اهل بیت و غیره اینها همه خب فرمودن الازی یلی ابلیس و عفاری تو هم عن الخروج علا ضعف های شیعتنا میان وای میسن نمیذارن که اینا حمله کنن به ضعف های شیعان ما و عنی یتسلط علیهم ابلیس و شیعت هون نواسب و ابلیس و شیعیان نواسبش چالبه نواسب رو شیعه ابلیس میخوانن حضرت نواسب شیعیان ابلیسن. هم فرمودند کسی که این کارو بکنه علاوه من انتصاب لذار کمی شیعه نه کانه افضل میمن جهاد در روم و ترک و خزر ال ف ال و روات دیگه که فرمودند که مقامش بالاتر از کسی است که جهاد کنند در رقابت پیغمبر اکیم صلی الله علیه و آله و سلم باز فرمودن که لوله لولا من يبقى انم باز عجیبه لولا من يبقى بعد غيبه قائمكم اگر بعد از امام علی بن محمد امام هادی علیه السلام لولا من يبقى بعد غیبت قائمكم اگر نبودن بعد از غیبت قائم شما من العلماء الداعين الیه و الدالین علیه علمایی که دعوت میکنن به سوی او و دلالت میکنن به سوی امام عس علیه السلام و ذابین عن به حجج الله که ذب میکنن و دفاع می از دین امام عصب به حجج الهی و به برهانهای های الهی منظور از حجج برهان است اینجا و المنقدین لضعفا عباد الله نجات میدن دن ضعفا رو من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ نواسب لما بقا احد الا ارتد عن دین الله در در دوران غیبت صحبت میکنه حضرت تصریح میکنه که لولا میا بقا بعد غیبت قائم قم در دوران غیبت همچین علمایی هستن و این مخصوص یه زمان هم نیست مخصوص یه روز و دو روز و عصر مرحوم کلهینی و صدوق نیست تا زمانی که غیبت ادامه دارد اول هم هستن که وظیفه شون این رو و این کارو انجام میدن شما بخواهید یا نخواهید و این وظیفه رو انجام میده خب میشه گفت که به خاطر همین که همچین علمایی بودن و این وظایفش رو انجام دادن این پرچم و این بیرق مثلا استمرار داشته و این معارف هیچ بوده و از بیده هیچ و اینا حالا حضرت داره می که اینها کسانی هستند که واقعا مورد توجه خاصه اهلویت هستند چون خودشون وعده دادند که اینها میان مورد توجه خاصی حضرت نصرت خاصه میکنن اینها خب فرمودن که اگه اینا نبودن لما بقا احدون اللرتد دهند دین الله همه تو مرزت می شدید برکت علمای حقیقی شیعه از فقه های حقیقی و محدثین حقیقی شیعه ازمت قلوب و شیعه اینان که حفظ میکنن قلوب دعفای شیعه یا رو کما یمسه که صاحب سفینه سکان هم مثل اینکه صاحب کشتی سکان رو حفظ میکنن اولاگه همه لأفضلون عند الله عزوجل. و افضلین عند الله عفضلون عند الله هم علمای هستند که دعوت در غیبت دعوت میکنن و حفظ میک خیلی ممنون، اصلاح سه چار دقیقه وقت داریم، یه بسه. دو سه دقیقه احتمالاً به پاسخ به این سوالهایی که رسیده بگیداره و یک دقیقه هم برای جنبندی بحث این هفته سوالم 933، چار دقیقه هم آخرشون 52-23 سوالم این بود که در برخی روایات کرامتهایی به نوباب عربعه مانند پیشگویی اشاره شده میخواستم ببینم این مطلب قابل اعتماد است؟ و دوم اینکه اگر امکان داره یک کتاب جامع و گزیده درباره مهدویت معرفی بکنید. یه سال دیگه هم دارند نیشون اینو پاسخ بفرمایید. چش. برای نواب بله. حتی ما اسمش رو معجزه نمیزنیم چون معجزه از حجت خلاص. اما کرامت‌های نرح شده از که بعضی گفتن میشه بهش معجزه گفت از این جهت که معجزه خود امام بوده از اما اینها مثلا به خبر خبرش رو بیان کرده. چرا به خاطر اینکه باید نواوب اربعه حالا وکلای اربعه بهشون میگیم که صحیح‌ترم هست این وکلای اربعه باید اثبات میکردن نسبت خودشون رو به امام عزه یه طریق اثباتش نصف و وصیت بوده است که وصیت کردن هم... به یکدیگر یعنی عثمان بن سعید به پسرش محمد بن عثمان محمد بن عثمان وصیت کرد به حسین بن روح نوختی حسین بن روح حسین به علی ابن محمد صنبوری اینها وصیت ال کردن به هم این نصف و به وصیت دلیلش ناخود و دیگری همین کرامت هایی که وارد شده مثل، حالا یه مثالی هم بزنیم مثل قضیه شلمقانی که وقتی اومد پیش حسیدم ابن الروح نو وقتی و ادعای نیابت و اینا کرد بهش گفت که خب من محاسنم همه سفیده این محاسن منو سیاه بکن میتونه اگه سیاه کردی من قبول میکنم اینم دیگه گفت خب باشه میرم میرم برمیگردم رفت که دیگه هنوز برنگشته اینا رو داریم صریحا و یعنی مطالبه معجزه میکنیم گفتن اگر تو هم ادعای نیابت میکنی بیار یه چیزی بعد معجزه رو بگو حتما خودشون یه چیزی داشتن خودشون ارائه میکردن همینو میخوایم بگیم گفتن کتاب معرفی کنی دوست داریم مهدویت جامع و گزیده کتاب اگر بخوایم معرفی بکنیم خب هر کتابی یعنی اگر بخوام یه کتاب معرفی کنیم جفای به بقیه کتابهای خوب میشود حالا واضحه به دوستم خودتون یکی دوتا معرفی میفهمیم خب کتاب جامعه اگر بخوایم بگیم منتخب الاثر آیت الله صافی فایگانی که واقعا کتاب جامع و چند جلده بدیده. یک جلده یا نه چند فکر کنم جلده هشت جلد بله و اگر کتابی که بخوایم یک کتابی که من خیلی دوست دارم و صحیح عقاید رو بیان کرده کتابی به نام مهدی منتظر نوشته شیخ جواد خراسانی ایشون از شیخ جواد خراسانی رضوان الله تعالی خیلی خوب تو این کتاب نکته های دقیقی رو درباره بحث امام عسل علیه و سلام و غیبت حضرت و ظهور حضرت و غیره بیان کردن و برای خواننده سطح متوسط هم خیلی مفیده خیلی راحت میتونه متوجه بشه حالا منتخب الاثر جامعتر کاملتر ابواب مختلف روایی رو همه رو جامعه اونجا آوردن ولی خب اینجا خیلی مفیده و توصیه میکنم حتما همه دوستان رو علاقه‌مندان به بحث مهدویت رو که واجب است واجب شرعی نمیخوایم بگیم حکم فتوا بدیم برای بحث آشنایی اگر میخوان تخصص پیدا بکنن خواندن به دقت کتاب الغیبه نعمانی و کمال الدین مرحوم شیخ صدری خصوصا باز الغیبه نعمانی به طریق مکیال هم کتاب خوبه مکیال خوبیشون ایشون بحثای اخلاقی مثلا توش بعضا مطرح کردهن بحثا مثلا یه مقدار تطویل بیشتری دارد و مخ... یه مقدار حالت خطابی تر مثلا در مکیال هست یه مقدار خطابه در مکیال ما میبینیم ولی خب بعضی کتاب نه تخصصی تر خیلی و مکیالم هم کتاب خیلی عالیه بله حرفی خیلی ممنون مستقرد. خیلی ممنون و مچکر خسته نباشید خیلی ممنون که مستقر. این برنامه مهدیان رو دنبال کرد اینشالله که خداوند همین مورد روز منتظران و شیعان خاصی حضرت بلیه از جلال الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد اللهم صلی علی محمد و الله محم